صلى على فاطمت مابيها ودانها ودنيها وصلى تعدد ما به علمك اللهم صل على محمد وااله محمد مع الجنه بسم الله الرحمن الرحيم مباحثه منده رحصه مو و پوست و رنگ مو و خضاب که رنگ سر و یا رنگ ریش باشه در مرد زن یا فقط در مردان و پسران روایاتشو یه مقدار خوندیم از تبل المعصومین حالا تحقیق پیرامون این موضوع از کتب قدیم و جدید رنگ کردن مو امروزه در بین خانم ها و یا پسران و مردان مد شده اصلا یکی از مد روزه قافل از اینکه رنگ کردن با روحای شیمیایی مضر رنگ های مو به نوع رنگ های شیمیایی برای بدن مضر هم برای پوست سر هم برای چشم هم برای نقص ضرر دارد و این در پزشکی ثابت شده است اولا مقاومت مو رو کاهش میده و ظریف شکست مو بالا میره چون مقاومت سفید شدن موی سر در مردان و پسران کمتر از زنان و دخترانه همچنین بعد از ریزش مو و تاسی سر غالبا پیاز مو در افراد از بین رفته و جاش دیگه مو در نمیاد تا آخر عمرش طبق حکم ظاهری فطبق حکم ظاهری مگر اینکه مو رو از پشت سر بگیرن و در جلو سر بکارن و اگر در خانم ها باشه با لیزر تا 2000 هزار 4000 از هزار از تارهای پشت سر میگیرن مو پشت سر میگیرن بعد جلوی سر که خالی شده یعنی اگر خانومی به خاطر کاهش هورمون زنانه استروژن جلوی سرش خلوت شد بگیم آلوپسی مردانه گرفته خب تو پزشکی جدید علاوه بر اینکه قرصای هورمونی بهش میدن کاشت مو رو هم به طریق لیزر پیشنهاد میکنن با پیاز موها که پشت سر وارد در جلوی سر میکارن اینا خارج از کتاب بود خدمتون گفتم پس این رنگ‌های شیمیایی ذریب شکست مو رو بالا میبره و ذریب سپید شدن مو رو هم بالا میبره توهی از ها و های مو میکنه یه سری فلزات هستند که به موی انسان رنگ می‌دن مثل آهن مثل منگنس مثل مس مثل تیتانیوم مثل روی مثل تنستن، تین لامپای رشته ای است. فلز تنستن. اینا از فلزاتی هستند که به موی انسان رنگ میدن. خب همه این فلزاتی که شما می‌مایم در میوه‌جات هست، در سبزیجات هست، و همه اینها در میوه‌جات و سبزیجات موجوده. بهترین وسیله از سفید شدن موی سر و برای رنگ کردن مو هم بهتر آدم به سراغ داروهای گیاهی بره طبیعی بره داروهای گیاهی و طبیعی یکیشو از روایات و ستون خوندم دیروز بحث چی بود حنای طبیعی بدون این که داروی تقلمی دیگهی قاطیش بشه یکی دیگه از داروها چیه مازوه مازو بازه زنبوری یکی دیگر از چیه؟ وسمه با سین وسمه یکی دیگر داروهای گیاهی چیه؟ گل بابونه گل بابونه نه تنها پیشگیری میکنه از سفید شدن مؤمن بلکه یک داروی بسیار قویه در نگهداری مو و عدم ریزش مو به گونه ای که اگر گل بابونه رو در آب جوش بجوشونی بعد آبش رو صاف کنی حنا رو تو جوشونده گل بابونه بخسونی 20 دقیقه قبل حمام به سر بزنید بعد یه دقیقه 20 دقیقه که کساب کری بعد با آب بشونی رو اول جلوی ریزش سریع مو رو گرفتی حالا بحث رنگ زیر رنگ مو هم ایجاد میکنه چون رنگش مایل به زرد میشه درستان میگیم تلائی روشن یکی دیگه, دیگه از چیزهایی که مومنه تو رنگ رزی به کار میره حتی رنگ موی سر بحث پوست باقلیه پوست باقلی یه بار مثلا کسی بیماری ژنتیکی همولیتیک داره مثل فاویسم مثل کمخونی داسیشک اینها نباید باقلا باقلی باقلا بخورن اینها نباید بخورن حتی نباید کمک به دیگری کنه تو پاک کردن تا چه برسه؟ بخواد به عنوان رنگ موی طبیعی به مواش بزنه چون به حالت شک و اغما میرن به حالت اغما میرن پس این قیدشو باید کناره این ذکر کنه اگر بیماری ژنتیکی، رسته همولیتیک مثل فاویسم و کمخونی داسی شکل نداره حالا میتونه از پوست باقی با عنوان رنگ زننده طبیعی مو استفاده یکی دیگه, دیگه از چیزهایی که جز به رنگهای طبیعی هم در موی سروریش هم تو بحث رنگ رزیهای و تولیدی حتی در علیاف قالی اون درگ و پوست درخت گردور چه پوست درخت؟ چه پوست دور مغزش؟ پوست سبزش؟ و چه برگ های گردو؟ اینا همه در لنگزی مفیدن. آب پوست گردوی تازه و برگ آم. یکی دیگه از مواردی که در رنگرزی طبیعی هست، بحث مرد، آب مرد دیدین مو ملاج بچه ها با زرده تخم قاطی می بعد روز هفتم رو ملاج میزنن بعد بچه رو میبرن که ملاج بچه بیاد بالا این به علاوه بین سه استخانی جمجمه طرف راست چپ و کاسه سه سه تا استخان هستیه این قسمت به علاوه که جای مسح وجود هم اینجا میگیم ملاج حالا مردو که قاطی زرده تخم کنی رو ملاج بذاری ملاج بچه میاد بالا دیگه گود نیمونه تصال فرمونی مؤمنان؟ حالا مبایست خودم علاوه بر اون فواید. حالا تو بحث رنگ رزی طبیعی میسر، مرد و تقمه آن یکی دیگه, دیگه از چیزها مؤمنان برگ چه قندره برگ خیلی فواید داره علیکم السلام یکی از فوایدش اینه که پیشگیری میکنه و همچنین درمان میکنه جزام را بیماری خوره را بحث باسیل هانسن حالا مباعث ما که تو رنگ مو و ریشه چیه؟ جوشانده برگ چگونده خوردنش هم که گفتیم چی باشه با گوشت تازه گاو باشه به ضد بهقه و ضد برست از باب کمک به درما و مباعث خودمون از درون یه سیل املاح برسونیم که رنگدانه های مو رو تأمین کنه چند منظوره میشه استفاده کرد از بلگه چه قومده یکی دیگه از چیزهایی که در رنگ رزی به کار میلد چیه؟ گل لادن گل لادن یکی دیگه از چیزها جوشانده پوست اناره جوشانده پوست انار. یکی دیگه شقایق نعنائی شقایق نعنائی یعنی گل لاله به گل لاله میگن شقایق نعنائی یکی دیگه میخک آبله میخک دارویی داریم غیر داروی داریم حالا مباسه خود میخک آبله این هم یکی از داروهای گیاییه که در رنگ رزید به کار و رنگ موها میوه تمش قابل عرض برای دیابتی ها. تو میوه ها تمشک و توت از همه قندش کمتره. حالا خود میوه تمش یک رنگ زننده طبیعی موی سرریشه میوه تمشک از بهترین خزابهایی هستند که در طب سنتی ایرانی باستان استفاده می شده. از شاپور شافور بگیر و بیا تا ابو علی سینا و بیا توی شما ارز کنم آدم دیگه چقمینی در قانونچه و بعد دکتر یوسفیه جدیدم که قانونچه رو دست میدن باشد همجور بیا مامنام تا مخزن و الادویه یه ست اسماعیل عقیلی چا پایی بنبهی و هنده اینا هست بیا تا فخر رازی در الحاوی همجور بیا تا ما پس طب سنتی ایرانی مومن از تمشک به عنوان بهترین خضاب در موی سر و ریش استفاده می‌کردند، و می این هم بهترین آنها تو بحث فلزات یادتونه گفتم تو میوه و سبزی جاته حالا اگر کسی بقیاد ظاهرن از فلزات استفاده کنه نه اینکه میوه و سبزی جات بخوره مشینه از املاح معدنی بله که میشه بهترین اونها چیه براده آهن پودرش هست، گردش و نس و زنگ آهن حالت نارنجیه و مرداب سنگ براده آهن و املاح آهن وقتی با مواد مازویی ترکیب می شود البته جدا جدا یک رنگ سیاه ثابت از خودش باقی میگذارد یک رنگ سیاه ثابت از خودش باقی میگذارد استفاده از گیاهانی که تعم گس دارن بعضی از گیاهانی که تعم گس دارن یعنی می میخش دارن ترش و شیرین آنها هم در رنگریزی طبیعی حتی موی سروریش استفاده میشه. به این منظور در اثر وجود مواد مازویی که در اونها هست. مثلا محمد زکریای رازی در کتاب الحاوی گوید بهترین خضاب خضاب حنا و میخکه به مقدار مساویه. میگه حنا رو با میخک به مقدار مساوی قاطی کن پود که کردی ها حالا قبل از حمام میتونی به موی سر رو ریشت بزنی حالا برای خضاب های مفید دیگه مثل کلاهک بادنجان کلاهک بادنجان که مردم میکنن میندزن دور خب این بهترین دارور زد بواسیره مردم میکنن میندزن سرش خالی این تلخه خیار که بهترین پیشگیری و همچنین بهترین درمان کننده مال قنده که انسولین طبیعی داره تو تلخه خیار مردم طبق عادات زشتشون از خودشون یا از قربشق کله خیار میکنم منزن سه اچ خلی پس این کله خیار که سبزه مومنه هست اینه مومنه قطی خرش بادنجونتون بخورین زده بواسیره یکی از علائم عمومی از مردم دنیا قبل از ظهور چیه؟ غالبا مبتلا به بواسیر و یبوستن. بعضیا میگن دم چشمه چون که جاهله، نمیدستهش خالی. یکی دیگه از چیزهایی که در رنگریزی به کار میره، حتی در الیاف قالی فواید داره، ریشه اناره. ریشه درخت اناره غالبا مردم اینا رو مینذن تو بخاری کنده من اینا رو با چشمام دیدم و حال اینکه قوی ترین استحکام بخش ترین ظروف چوبی ریشه بعضی درختانه از جمله آکار که در جنوب اینها هست حتی در جزائرمون هست یکی دیگه, دیگه از چیزهایی که مومن مفید مفیده در رنگ چیه؟ خاک مثه مردن مثه استخارات میکنیم این همه بردیزل تصم نقاله و بیل میکانیکی و اینقدر خاک ها همون خاک معدن مس هست این رنگ رزی بسیار مفیده مفت و مرجانی یکی باید جمع کنه به اسطلاف فقی حیازت کنه مالک حیازتت میشه خلیله سیاه حلیله سیاه هم خوردن بسیار مفیده سه تا فایده ثابت شده داره هم ملین مزاج نمیذاره تنبلی روده بزرگ هم نور چشمت زیاد میکنه نمیگذره تاریه دید بگیری و سوم سنای زیر پنجاه سالگی رو فولیکول ها و رانگ دانه های مو رو برمیگردونه روزی دو تا سه عدد حلیله سیاه بخور هر سه فائده رو داره یکی دیگه موضوعه که قبلا ذکر خیرش کردم. یکی دیگه هم نخود سیاه مومن شنیدین میگن نخود سیاه واقعا نخود سیاه داریم یعنی مردم به کنایه میگن یعنی بچه رو رفتیم دوباره نخود سیاه نخود زرد داریم نخود سبز داریم نخود سیاه هم داریم نخود یک داروی مفید برای رنگ موی سروریش نخود زرد یک داروی مفید زد صرفه ملین سینه و درمان کننده بیماری خروسک که از سرمخوردی شدید میشه تا صوتی تغییر میکنه به جای شربت های اسپکترانت و زد احتقان صورتی رنگا ها آب نخود از او قوی تر نخود زرد که تو آب گوشت و آشینا میزیم عرب ها میگن بلبله عربه ایراق بلبله حالا اینجا شما چی کار میکنیم مومن آب نخود که به لعمه قرغره کن قرط بده خشونت صدات هم خوب میشه کسی که قاری قرآن خونه کسی که مدرسه معلمه استاد دانشگاه و من ماننده این بزرگ بره. اما نخود سبز عقیمی میاره نخود سبز نباید بخوریم عقیمی میاره اینه که اون متداوی شده داخل خارج کشورها ویژگی هاش در به داغون شده با اینکه اصل کارخونه سالم تخفتاناش در به داغون شده با اینکه اصل کارخونه سالم ناقسای ژنتیکی نداره به خاطر بدخوری اینجا به دست خودش برای خودش عقیمی میاره تصلا فهمید نخود سبز عقیمی میاره بله بله نخود سبز بله بله بله. نخود سبز رو تو جیره قضایی تو نذاریم نخود زرد باشه حالا و سه نخود سیاه پوست نخود سیاه پوست نخود سیاهی که پوست داره نخود سیاه پوست دار نخود سیاه پوست دار, سیاه پوست دار. به مقدار مساوی با هم کوبیده سه قاشق روغن کنجد و آن مخلود کرده در ظرف آهنی میریزیم چه روز میگذاریم تو جای خنک و تاریک باشه بعد استعمال می‌کنیم بیس دقیقه قبل حمام به موی سر یارش در گذشته یعنی در قدیم تبه سنتی تبه مکمل در گذشته این ظرف در بسته آهنی در زیر آب چاه یا زیر آب قنوات نگهداری میکردم که ذریعی به اکسید بره بالا تر تسایی فهم نسخه های دیگری هم مومن هم هست دیگه نگاه کنیم دیگه نمیخوام همه رو بخونم کتاب طب گیاهی و فواید مفید و فوائد میوجات و گیاهان مفید معلف علی اکبر کازمی کتاب راهح درمانی و ماساج برای افراد همچنین برای مادر و کودک نوشته یک خارجی به نام آلیسون انگلند، آلیسون انگلند ترجمه محبوبه فیروزی کارشناس ارشد ماماین، بوبه فیروزی ارشد ارشده ماماین بحث پوست و مو در خانما پس از زایمان یا در دختران یا تازه عروسا یا مرد و پسران خب اگر بعد از زایمان باشه تغییرات و هرمونی صورت گرفته انه بچه به دنیا نمی هرمون تستسترون مردان افزایش پیدا میکنه تا کیسه آمینیون به اسطلاح خودمون مشیمه پاره بشه بچه از تو مایه مشیمه که مایه کیسه آمینیونه بیرون بیاد مشیمه غیر از رحمه ها بعد که بچه بیرون اومد بعد یه مدتی دیگه مختصر که توتاق زایمان هست، حالا اون مشیمه بیرون میاد با بند نار. تصال فرمودی با بقیه ناب که به جدا چسبیده بود پس تغییرات و صورت گرفت که بچه به دنیا آمد در هنگام حاملگی هم ریزش موی سر مادر بیشتره پوکی استخوان در مادر بیشتره خوردگی دندونا در مادر بیشتره زعف عمومیش بیشتره وحنن علا وحنن این بچه داره چاق چون چومبه میشه تو رحه به خاطر وجود زیجود مادره به ازن خدا از ویتامین ها و املاح بدن مادر رو تغذیه میکنه از طریق خون مادر به ترتیب و به سبب بندنا پس بعد از تغییرات هورمونی خوب و بعد حاملگی و زایمان وضعیت پوست شما در مدت زمانی کتایی تغییر میکنه در خانوم حامله میگم بعد از اینکه خون نفاس دیدم بچیشون به دنیا آمد که معمولا مشکلی به وجود نمیاد باز معادله معکوس شروع میشه هورمون استروژن زنانه تولید میشه تعادل هورمونی میشه و بعد افزایش مختصری هورمون استروژن زنانه که درصدش بیشتر از تستوسترون مردانه است اما ممکنه پوستتون خشک بشه یا ترک برداره داره یا در حین حاملگی پوست شیکنه خانومت یا دخترت یا عروس ترک قاش قاش بشه و بعد این ترک بعدا بمونه و رنگاش بد بشه و چروکیده قهوه پرنگ برای این که ناموس ایتور طور نشه از ماه شیشون به بعد هر روز یک بار این پوست شیکنه شو با روغن زیتون چکار کنه چرک کن که قاش قاش نشه نارحت بشه معاملات کسایی که سو تغذیه دارن ها یا رشد جنین زیاده یا چند قلو دارن گاهی این پوست شکرمشون چی کارم میکنه آسیب میبینه خود یه آسیب نبینه ها حالت الاستیکش هم حفظ بشه نرم و لطافتش هم حفظ بشه رنگش تغییر نکنه زخم پیدا نشه روزی یک بار روغن زیتونش کار کنه ماساج بیده پوست شکمش آروم خوا در بعض یا مؤمن وقتی که بند میندازم یا بعد از حاملگی پوستشون خشک میشه یا چروکیده میشه یا مستعد به جوش میشه یه فرمینی صورتش پر جوش میشه چی؟ تپلگ رفت خودش خوشگلتر کنه مثل شما شوهر حالا صورتش پر جوش شده اینه جوش آبل مرغون و ساخک و ساخچه و اعصابش به میشه هفته خودش خوشتیپ و خوشتوب کنه واسه شو حالا این حالت واسهش پیش اومد چرا؟ به خاطر اون تغییرات هورمونی به خاطر اون تغییرات هورمونی تصایف فهم بودین؟ خب چنانچه اوسانس های گیاهی در دوره پس از زایمان روزانه استفاده شمم تفاوت فاحشی را ایجاد می نمایم این اوسانس ها در پوست نفوذ کرده و به لای های زیرین وارد شده و قبل از اینکه مهاجرت این سللو به سطح پوست آغاز شود بر آنها اثر مثبت میگذارد. سه هفته زمان لازمه تا سلول های جدید و با وضعیت خوب به لایه فوقانی پوست برسند گرچه با افزایش سن این فرایند طولانی تر خواهد شد از سه هفته میاد به چهار هفته. بنابراین برای مراجعه بعدی حداقل درگر سفته بعد از درمان از رایح درمانی میتوان استفاده کرد خب قصانسه گیایی و برای مساج صورت اینها در صفحه 149 کتابش گفته آن مراجعه کنید. گاهی اوقات وضعیت مو در خانمایی که خون نفاس میبینم یا بعد از زایمان و دوره خون نفاسشون هم تموم شد خب این حالت موشون تغییر میکنه یعنی پرپشتیش کم میشه موهاش تونک میشه گاهی کف سرش دیده میشه بعد استرس میگیرتش ریزش موش بیشتر میشه حالا خب اینجا باید زود به خودش برسه از این ویتامین ها املا مثلا یه پرتقال شیرین بین ناهار یه لیمو شیرین بین شام املا هست مثل شیر خورما شیر حلیم گندم گوش صبح بعد از نهار هفته خورما بعد از شام یه دونه سیب درختی اگر یه داره مادر یه استکان آف سیب تازه ویتامین ها و املاح بدنشو تقریت کرده ریزش موش کم میشه زریف شکست موش کم میشه سستی روی سستی بدن ها هی بی حال و بیرمقشه هی دراز بکشه لهم بده کرای شخصیشو ترک کنه اون همه کم میشه یعنی وحنن علا وحننش چی میشه؟ کم میشه. اگر کم خونش شدید باشه فشار خونش همیشه زیر نه باشه کم حوصله‌ای ترخاشگنه ضعف اعصابه دارای افسردگی اختلالات تو خوابه ریزش موی سر زیاده دندونای خرد شده استخون نحیف شده رنگ چهره و پوستش هم زرد و زرد. گویا که خون در پوستش نیست پس نباید بگذاریم ناموس حلالت که خانمت یا دختر بزرگوارد یا عروس بزرگوارد کم شدید بشه و یا اینکه سوء تغذیه داشته باشه و یا اینکه فشار خونش بیاد زیر نه فشار خون زیر نه و کم شدید هم مادر تعداد میکنه هم جنین و و اگر ماه دوم و سوم حاملگی باشه اکثر سخت جنینها در ماه دوم و سوم حاملگی به خاطر سوء تغذیه مادر پس یه شوهر زرنگ فقط مذکر نباشه. بلکه امام خانواده باشه یعنی نیاز واقعی ناموسش رو بدونه نیازش که برطرف کنه. گرفتین ماام چی میگن؟ نه اینکه به درخواست های بیجا ناشی از اراده های ناخواستن که ماحصل ویار در زنان حاملس ترتیب اثر بدین اینجا ترتیب اثر دادن به نفس اماره خود یا به نفس اماره دیگریه اینجا مشرک شدی به شرک خفی نه باید شوهر مذکر نیست شوهر امامه شوهر اسره مدیریت خانواده به دست شوهر صالحه پس باید نفقه واجبش رو ادا کنیم چه نفقه واجبه؟ حضرت خانومه چه نفقه واجبه فرزنده که جنین در رحم مادره نمید بگید من پول خرج می‌کنم خب پول خرج می‌کنی؟ آتاش خال میاد دو خونم. باید پول خرج کنی غذا و ریزم قذی که حلالا طیبا طاهرنه در اختیالش بگذاری قضا و ریزم و نه آتاش خال مثلا بری 10 هزار تومن, 20 هزار تومن, 100 هزار و چیپس و نوشمک و اسمارکچیس و نشابه گازدار اینا که فاتحه هم زنه خوندی هم فاتحه جنین رو شما نفقه رو نکردی زمه نه غذا یا ریزم و قضی حکم اول حکم بعدش چیه؟ حلال باشه اکل مال به باطل نباشه بچه نرمال میخوای به حلال بچه سوم این که باید فاهر باشه نجس متنجس, متنجس نباشه شبه ناک نباشه چهارمی که فید باشه زارباطنش خوب باشه مال قسمی نباشه مال یتیم و فقیر نباشه بمانند اینا همه اینا رو باید باعیت کنیم حالا میتونی بگی بچم نرماله بچه هم استعدادش درخشانه هم چنین و چنان اما اگه اینا رو رعایت نکنیم مومنا خب تو ازاریش بشه زریبوشیش زیر نصف بشه هوشیاریش تو کار سایه کم بشه بابا اینجا زارم کردی هم به ناموست هم به بچت یادتون باشه چی میگم بدون تقیه قالب مردم داخل و خارج کشور آتش میارن خونه تو قاطنی هم باقیه حاج من خرج میکنم چرا این بچم یا این پسرم یا این دخترم چرا مریض میشه؟ یا این ناموس هم چرا این مریض میشه؟ حاجقا من همش ختمه مطب به دکترها و بیمارستانها در موقع گفتم به خاطر سوه رفتارته به خاطر این که واجب و نفقه رو عدا نمیخونین پس این که ما داریم تبال معصومین میخونیم به خاطر شناخت بهتر به وظیفه و عمل به وظیفه است یکم مثال روستتون بدنم همونجون حاجقا میخوام پوست خودم زن بچه شکسته نشه پیرو فرسوده نشه تندون هم سمانه خودش سمانه خودش هم طول نکشه عوضون ویتامین سه تو جیره غذاییت باشه خلاص نیست قصه ویتامین ویتامینه ایرانی آمریکایی بخورید پرتقال شیرین و وسط نهار یک پرتقال نفری بخورید تمام اونایی که گفتم و بیشتر فایده داره هم پوستتون شفاف میشه بدون چینه و چروت. هم رو هم تندتون سمانیم میخوا سخور که نمیکشه هم سه گرم ویتامین سه به این غذا که بخورید توان بدن در جذب آهن از این غذاایی که قردی ده برابر میشه. کاتایزار و مجاورتی وسی چی قوندی تو شیمی لفوازی یا نمره ن یه عمل کردن سه عمل کردن ما علم میخونیم به نوع علم نافه که عمل کنیم. می‌خوام که لحظهازی کنیم یه فیگور بگیم حالا اینجا مؤمنا اگر کسی بخواد خودش رو و زن بچه‌ش رو بیمه کنه آخرین مطالب پزشکی میگه ویتامین C و ویتامین B1 که تأمین باشه خب یه لیمو هم با شام می‌خوره همه پرتقال و لیموشیرین میخورن، اما هر کسی روز خودش یه کار میکنه. بر مدار علم و یقین نمیخورن. کسی مؤمنا چی میگه همان گونه که معامله هر دنبیلی و گثرهی باطل است نمیتونی بی کنی خوردنش هم باطله با صرف نظر از حرمت جاهلانه و قافلانه که تغذیه نیست مخلوط جاهلانه که تغذیه نیست تغذیه صحیح مخلوط عالمانه است سنت باید در نظر بگیری جنسیت رو باید در نظر بگیری نیاز بدن باید در نظر بگیری تحرک و کار باید در نظر بگیری مخلوط آلمان است تصال که هم حالا تو بحث مو حاجبا میخوام هم حافظم قوی باشد هم رنگ موام سیاه بشه سنم زیر پنجاه ساله. هم تندلی روده بزرگم و یوبست حاد و مزمنم خوب بشم مندگاری فضولات در رکتومم از بین بره پیشگیری کنم از دمانس زوال عقل پیشگیری کنم از آلزایمر زوال عقل پیش رونده چی کار کنم؟ به فهماش این امام رضای رعوف عمل کنم حلیله سیاه به اضافه حلیله زر به اضافه حلیله کابولی به نسبت مصابی اینها رو پود میکنیم فاطیه هم میکنی در یک کیلو اصل هم میزنیم تو سایه نگهداری میکنی بیرون یخچار هر روز یه قاشق مرب بخوری از این مخلوط بخور همه اون فواهدی که گفتم داره و بیشتر خواستم مخلوط عالمانه بگم امام رضای رعوبتون تب بر رضا رسال زهبی یشد دلعقل یعنی نسیان نمیگیری یا فراموشی دمانس نمیگیری یا زوال عقل آلزایمر نمیگیری یا زوال عقل پیشننده و علی اکبر سقاباشی تو کتاب نجات از مرگ مصنوعی میگه هم موهای سفید کم کم سیاه میشه رنگداناش برگ هم نور چشم زیاد میشه و هم این که تقویت حافظه میاره حالا ایشون میفهماید هم این که یوبستت خوب میشه نسبت مصابی مثلا درگرم درگرم درگرم داد پود این ایسی گرمه میریزی قاطی یک کیلو عسل. اگر ضعف اعصاب اینها داری یا زود به هم میریزی یا کوره در ها اصلات گرم بذار مثل اصل آویشان، اصل نعنا اگر تجمع مایات اضافی بافتی یا تومار یا کیست دارین اونجا اصلت اصل گرم استخدوست بذار با کمترین هزینه بدون استرس چند منظور عمل میکنی یعنی میگیم ذریب بازدهی و راندمان مفید نعمت موجود رو بالا میبریم تو بحث مو و پوستم شوهر آقل جازب نسبت به ناموسش قویه نه این که ناموسش رو بپرونه با عدم رعایت بهداشت مو عدم رعایت بهداشت دیگه فردی ناموس تا نوید بپرونیم یا ذهن ناموستو متمایل کنی به قریبه به نامحرم نه باید به خودت برسی برایت واجب اخلاقیه در بعضی مواقع واجب فقیه هم میشه چون مقدمه و نباید براش فراهم کنی پس به خودت باید برسی چه پوست چه مو و مانند اینا خب چیزای دیگه هم مؤمن هست مثلا آیا بعد از حمام یا دوش میتونم از روغن ضد ترک پوست استفاده کنم؟ بله که میتونید. یه بار داروی مفرده است. مثل چی عموجون؟ مثل گفتیم روغن زیتون در زن حامله مثل ماساژ آرام پوستش کن. در غیر زن حامله مثل روغن کنجد هم بخوره تو 24 ساعت یک قاشق پلو خوردین. هم محل ترک خوردگی و ماساج بزن در غیر زن حامله در زن حامله اگر کنجد یا روغن کنجد زیاد بخورن سقط جنین می آورن حالا داروی مرکم هم میشه استفاده کرد مثلا یاد داشت بفرمین جون صفحه 100 این کتاب روغن زده ترک پوست چهار پیمانه یعنی هشتاد میلی لیتر روغن بادام، یک پیمانه یعنی بیست میلی لیتر روغن آوکادو،, آوکادو. یا هفت قطعه اسانس استخودوس و پنج قطعه اسانس باره نارنج. یا هفت قطره قطر دوست و 5 قطره اسانس نارنگی یا پنج قطره با نارنج و هفت قطره اسانس نارنگی اضافه کنید ولی هر کدوم دوست دارید اینا هر کدوم پمادهای ضد ترک خوردگی پوسته شیمیایش هم هست که به متخصصین پوستمو مراجعه میکنید خوستتون توضیح هم کم میدم یه سری کتابچه تولید کردن تو داخل کشور رایت محض ترجمه است از آمریکا. اشکال نداره هم ترجمه میکن اما همه علم نیست در این قاله موامنا تو داروخونه هم پرخشون و این حرف خب حالا یه حاشی های بیز میخوام یک کم بگم یه سری حرف حق میگه بعد مؤمن میخواد داروها شد بخورده مردم بده. داروی شیمیهی رو. قرضش دارو شیمیایی فروختنه. چهار کلمه حرف حق وسط میزنه. حالا اونایش تو خوبه یکم میخونیم. مثلا در نگاه اول چهره هر فرد نشانه یعنی وجهش چهره صورت. نشانه اینه که آیا سلامتی داره یا سلامتی نداره. چون با معاینه دقیق پوست و چشم و پشت کره چشم 97 درصد بیماری ها تشخیص داده میشه این خارج از کتاب هرشیه بزنید امامل متعددی هم داره زیبایی چهره شادابی و تراوت پوست موهای زیبا و سالم تناسب اجزای صورت آرایش و نظافت پوست و, و, و, و چند تا نقطه سلامتی پوست دارای اهمیت دو چندان چرا که پوست سالم زیربنای زیبایی صورت و بدنه پوست انسان بزرگترین اندامی که تمام سطح بدن رو میپوشانه و سدی نفوظ نافذیره یعنی میگیم محافظ کل بدن از بیرون چون یه سری عوامل محیطی و بیماریزا هستن که پوست و بقیه رو درگیر میکنن، تخریب میکنن. پوست مانع در زمین هم همچینو مثلا جو زمین، اتمسفر زمین، مثلا لایه اوزانش مانع از این که اشعه ماورای بنافش خورشید، بیش از اندازه بر زمین تابش پیدا کن اگر بیش از اندازه تابش پیدا کن همه دچار سرطان های پوست میشن این تفضل خداست نعمهو فاهرتن و باطنه. یکی از نعمت هایی که پنهانه از دیده ظاهری مردم چی همه جان نعمت مادیه لایه اوزان قصه او لایه اوزان این مانع میشه که عشق ما ماقرات بنمش بیش از حد به زمین تابش پیدا نکنه و افراد دو چهار سرط های پوستی اما بشر جاهل، بشر خود خودبین با ایجاد زیاد سوخت های فسیلی و هیدروکربانی به دست خودش، لایه اوزون رو نازک میکنه و یا سوراخ میکنه حالت های در زمین ایجاد میشود یخهای قطبی یخچالهای این طرف و اون طرف به خاطر گرم شدن بیش از اندازه زمین آب میشود حرارت زمین هم بالا میره توفانها زیاد سیلاوها زیاد زلزله‌ها زیاد می شود. و سونامی مد می شود زلزلهایی که موجهای سنگین دریا را به ارتفاع چهل متر بلند می کن به خاطر عمل خودمهورانه خودبینانه و سپس تقیانگرانه افراد بشر. که عبد پول شدن کرکرانه و قافلانه از کاپیتالیست و سرمایه اطاعت و تبعیت می کنن. چطور در فضا خدا این نعمت گذاشته به نام لایه ازن نعمت دیگه هم گذاشته هم آیه قرآن تصاوی کنیم نعمهو ظاهرتن و باطنه یکی از نعمت هایی که خدا گذاشته ها میدان نقناطیسی زمینه که یک سپر حفاظتی قویه که طوفانهای خورشیدی زمین را در هم نکوبه و حیات سالم را در محیطهای سالم و اکوسیستم‌های های حیاتی از بین نبرد. آیا تالا شده برای نعمت لایع اوزن خدرشک کنیم؟ برای نعمت میدان مغناطیسی زمین که صدی محکم در مقابل توفانهای خرشیدی خدا رو شکنیم هوا حواظ آدمی یکی دوتا نیست مامان، همین پشت گوشتو میگن پشت گوش دیری اولین صدا باید کرمی شدی از جیغ خودت وقتی که به دنیا آمدی چرا همون سالمه چون حفره هایی هست پشت همین استخون گوش پشت لاله گوش، از تو هایی هست که صدا رو ذریب شکستشو بالا پایین میاره پایین میاره پایین میاره, میاره کم کم مات میت. غذا پرده سماغت بالا نمیشه مجرای استادش از گوش میانی به حلقه هم نعمتای خدا رو ببینم تا آخر آن گای حواست نی. علی امصغان میسازه. حققا من راه میرم مغز به این شلکی یه فوتشکنی تکون میخوام. این همه را میرم، میپرم، کنفو میرم، کاراته میرم، خیز سه ثانیه پرش از ماهن. پرش از ارتفاع چرا این مغز هم نمیشه برای اینکه اینقدر خدا به نعمت داده از تخت فنری های کف پا احالت فنریت پوست بدن مایه مفصلی، دیسک ها مفاصل استخون که هر کدوم تو مایه مفصلی هم سراش تا میرسه به مغز دار اکس العمل نیروی که ضربه میزنی به کف پا اکسر عمل نیروش تا به مغزت میرسان تقریبا دیگه صرف میشه این نعمات رو به من و شما و به بقیه کی خدا حالا خدا که این همه نعمت داده میگه خیانت در امانت نکن حسن استفاده نعمات موجود کن پس اینکه که به پوستتی یا موت هستی معاذب بدنتی ها نشونه خودمهوری نیست نشونه آشنایی به وظیفه و عمل به وظیفه است که تروایاتشیه به سبک های گوناگون مصادیقش رو بیان کرد حالا یکیش خضابه یکیش وسمه یکیش اسمت یا به شما از کنم که کحل بحث سرمه کشیدنه یکیش نمیدونم بحث جزره یکی بحث تینه یکی بحث رطب یا تمره اما مانند اینها شما دیگه مسادی رو تو برد توفه پیدا کنم محافظت از پوست در برابر آسیبهای محیطی و اینها باید آدم معاذب باشه یک کم و توضیح دادم خالج از کتاب در کتاب داره که تماس با تماس با مواد شیمیایی زیاد نگیر مثل آبجوال وایتنگس، تیزاب مواد سفید کننده اینا پوست چیکا کنه؟ تخریب میکنه. مخرب لایه های پوست مخصوصا لایه های سطحی مثل بشره و مثل لایه مالپیگین. خب بعد پیشناق میکنن جدیدی ها از قرب و شرق و داخل. اگر میخواهید تو آفتاب زیاد باشین استفاده از کرم های ضد آفتاب کن. با درجه اف مختلف که اینا رو قبلا گفتن. حمام آفتاب نگیر. در آب و هوای خشک. چقدر طور روایات داریم؟ حالا این خارجیه ما دارم می فرمایم. ما از قبل محسومین فرمودم چقدر طور روایات شیه داریم از سرمایه سرد و خشک پاییز پرهیز کن تا مشکلات سینوس های فوقانی و فکی نگیری تا مشکلات حنجره و تارای صوتی نگیری تا مشکلات قسمت فوقانی روی نگیری تا قسمت حلق و ابتدای نای مشکل نگیریم. تا مشکلات توروام لوزه جانبی و ازدیاد توروام لوزه سوم نگیریم. و, و خشونت صدا نگیریم. سرمخوردگی خوش نگیریم. صفای خوشک مکرل نگیریم. ترک پوست نگیریم. نظر میگه از سرمایه پاییز خودت چگاه کن؟ حفظ کن. اما نسیم باری که نسیم مرتوب مفیدی میگه از اون استفاده کنیم. میتونی یک کم لباستم کم تر کن بلی بدن نما نباشد میخواهم گم روایاتشیه کلمات اهل بیت همه مطالب رو فهم ده ها جمع. من میخوام در فصل پاییز و زمستون هم پوستم نرم و لطیف باشه مقاومتش مقامتش در سرما بالا باشه هم خشکی هوا به خاطر عدم ریزش نزولات آسمانی نه باروم یا نه برفیر نه تو محیطای شهری هم ذریع به آرسل یا ذرات معلق در هوا یا هیدروکربان ها و همچنین فلزات مسموم معلق در هوا مثل سرب و چی و چی زیاده شما الان یکی دو میلان یکی دو تا بلوار برو او برسه او بر بلوار و مؤمنان آلود و خاکی و دودی میبین امتحانش مجنی تو شهری آنان دیگه؟ بروس سر این پل ابتدای جاده سرق به به قربخون عرب بروسی پل بوتونی وایستان اگر مناره های حضرت دیدی من به جایزه فاصله فاصلش تا حرم یک کیلومتر بیشتره دیده نمیشه همه امروز هوا بسیار آلود است از خدا بخواهیم که باران رحمتشون نازل کنه به کرم و فضلش و به خیر امام زمان اجل تعالی فرجاش شریم موسیقی